بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين اما بعد طب ما در ده مولاي بحث حنفيه هستيم بحث ایمان آیا زیاد میشه یا زیاد نمیشه کمو زیاد میشه یا نمیشه ما در بحث اختلاف هم گفتیم بین اهل سنت و بین مرجعه فقها آیا اختلاف لفظی یا معنوی گفتید که اختلاف معنویه اختلاف جمهریه ما این مسئله رابطه رو دقیق شرحش دادیم و طبقه اون مسئله که خونده بودیم بیان کردیم حالا ما بیان ببینیم حنفی ها خودشون چه موقفی دارن چه اکس العملی از خودشون نشون دادن برزد مخالفین خودشون چی گفتن؟ ببینیم چی میگن خب حالا یکی از مسئله که هستی که از حنفی ها نقل میکنه چین اینه؟ ابن نوجیم از حنبی ها در کتاب بحر رائق در کتاب بحر رائق جلد پنجم صفحه 131 چینین میگه که میگه از جمله اقوال کفری اینه که یک شخص بگه ایمان کم و زیاد میشه کفره یکی از کفرها را یک از اقوال کفری را کم و زیاد شدن ایمان به حساب آورده این یکی از عمیمه شد ها امام ابن نوجیم ابنالوجیم حنفی صاحب کتاب بحر الرائق و یک از اموری حساب کرده که انسان با آن مرتد میشه یک مسلمان مرتد میشه یعنی یک مسلمانی بگه ایمان من کم میشه یا زیاد میشه این شخص کافر مرتده از دین بداره حد اقلشون حد اقلشون حد اقلشون چینین میگن که حالا از این غلوبش از اینا غلوبشون کمتر باشه چینین میگن ke kassi ke bage ke iman kam ziyat mishe mubtada inam ibn ibn al hakim samarqandi miga miga ke yanbaghi yanalam an yualam an al iman la yahdith wa la yanqus la an ma yara al ziyada wa an nuqsan fi al iman fa huwa mubtada man yara al ziyada wa an nuqsan fi al ا انقال ولم يقول أحد من ال الصالحين ان العيمان زييد نخصص این در كتاب السواد والعظم سسي و حد اقلش الله ال من نمیخوام ود دیگري یا مثل ع العمل های دیگرشون بر جدا اهل ن بیان بکنم من فقط یک مروری می کنم یک مروری بر اون آثر و اجماع هایی که ائمه نقد کردن در اینکه ایمان زیاد و کم میشه آیا میشه گفت یک شخصی که بگه ایمان کم زیاد میشه کافر یا مبتدی ببینیم این حرف کی زده اولا از صحابه بزرگترین اصحاب ما عمر بن خطاب داریم قبلا این اثر بیان شد لیکن باز دوباره من میگم ای عمر بن خطاب چنین میگه بر اصحابش هل منزاد و ایماننا در روایت و نزدادو ایمانم بیایی ایمانمون زیاد بشه این اثر رو که تخریجش کرده روایتش کرده با سنت امام ابن نوی در مسنفش و در کتاب ایمانش و امام خلال در کتاب سنت آجوری در شریعت ابن بست در ایبانه لالکهی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و بیهقی در شعب ایمان با اصناد صحیح نگاه بکنید عقیده ای تحاویی که ما داریم همونطور که دوستمون گفتن گفتن که چی؟ گفتن امام تحاویی چنین نقل می کنه که ایمان چیه؟ اعتقاد به قلب و قول به لسان که قول مرجعه هست مرجعه فقه ها اینجا خلاف این گفته ای که بر خلاف برخلاف اعتقاد اهل سنت و جمعه هست ما گفتیم، اگه یادتون هست در درستان ما گفتیم ما این متن را به عنوان یک عقیقه سلف شموردیم به حساب ووردیم به عنوان یک جی اعتقاد سلف چرا؟ گفتیم اعتقاد سلف اعتقاد عتیقیه اعتقاد قدیمیه یک اعتقادی که در زمان رسول الله بوده صحابه داشتن رسول الله داشته و بعد از اون تابعین و تابعه تابعین ما یه چیزی که میخوام اعتقاد باید بهش داشته باشیم باید آنچه باشد که صحابه اعتقاد داشتن چرا قرآن وقتی که نازل شد اصحاب اونو فهمیدن قرآن برای هدایت اومد اومد که ما را درست بکنه ما رو ارشاد بکنه به راه نیک هدا باشه هدایت کننده باشه ولازمه هدایت اینه که ما از اون بفهمیم درک بکنیم اگر قرار اصحاب نفهمند کی باید بفهمه ki mitune befahmin quran aya kasi mitune befahme may ajam mitune befahmin agar unhayi ke araban wa quran arabiyun mubin bude agar unha natunan befahman ki mikhad befahme ma mikham bedunin va in tu gooshtun bashe tu zehnetun bashe wa man yushaqiqar rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yatabya مشاقل بکنه راه پیانبر از راه پیانبر بهتر در بره و بر راه غیر سبیل المؤمنین اون مؤمنانی که بودن در اون هست بودن غیر از از کسی هست راه غیر از اون مؤمنین راه برای خودش انتخاب بکنه نولیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مصیرا قرآن اومده که ما رو بفهمونه اگر اونها نفهمیده ما چطور میتونیم بفهمیم اگر ما بر خلاف اونها میفهمیم ما داریم درست میفهمیم یا اونها آیا ممکنه ما درست میفهمیم اونها مؤمنینی که اونجا بودن اجماعا اشتباه بودن ما درست داریم میگیم خب الان ما میبینیم این اعتقاد سلفی که ما داریم این متون خلاصه از اون اصولی هست که نقش شد از اون اصحاب در بحث صفات خدا در بحث حقوق خدا در بحث حقوق رسول الله در بحث ایمان به بهشت ایمان به روز قیامت حوض محشر عذاب قبر همه بحث اعتقادی مبادئ کی بگیریم آیا مجرد فلان شخص بگه این عقیده تلف قبول هات و برهانک و دلیل مدرک داشته باشید این مبدئ تخاوی خلاصه هست از عقیده تلف مبادئ بر بگیرید به اصلش عقیده سلف رو محمدی قبول نمی کنه که فلان شخص بگه اصلف ابن تیمیه هم سلف نیست که یک شخص بگه نه این عقیده سلف رو ابن تیمیه آوردند نه این اعتقادی که الان ما میگیم ما میگیم ما میگن که شما ابن تیمیه ای هستید از مدرسه ابن تیمیه داره صحبت می کنید شما وهابی هستید آیا واقعا این وهابیتی که ما اعتقاد الصحابه داشته باشیم ما اعتقاد سلفی که داریم همینطوری نیست ما با اسناد نه میگیم مکتبای اصول اعتقادی مثل امام الالحاکی با اسناد اعتقاد حضرا نکادن الان اثر ابن عمر ابن خطاب رو داری امام هیچ امام ابن عبی شیبه هیچ از بزرگترین ائمه اهل سنت که دو قرن بیشتر با عهدن فاصله نداره دو قرن کمتر 104 بیشتر فاصله نداره با اثر نبوت با با صحابه 50 سال بیشتر فاصله نداره آیا این اشخاص همینطوری اومدن نقد بکنن آیا بر خلاف این چیزایی که اینو نقد کردن نقد شده خیر از صحابه ببین چه نقد میکنن این کتاب هایی که با اسناد دارن نقد میکنن مثل دبی شیبه مثل امام لالاکائی مثل امام امام ابن باکر در ایوانه مثل امام ماجردی در کتاب شریعت این بزرگترین کتاب کتابهای اهل سنت هستن کتاب هایی که اصول از آن گرفته، بله امنه تنی بعد میاد از اینها استنباط میکنه اساسه اعتقاد سلام ابن تیمیه منشأ فکرش از این کتاب ها بوده نه اینکه بت یه فکر جدیده برای خودش آورده ما برای خودمون اسناد داریم اساس داریم برهان و مدرک داریم این مدرکیمون با اسناد صحیح وقتی که نقل میشهد و برای محقق قبول نکنیم یعنی اینکه بگیم رو سرو چش این عمر اون را خطاط عبدالله بن مسعود میگه اجلسوا بنا نزدادوا ایمانن بیا یدینشین تا ایمانمون زیاد بکنیم بچہ ایمان زیاد ہوเช با سکرت تلاوت قران در دعاش می گفت اللهم زدنی ایمانا و یقینا وفقه خب این اثر این دو تا اثر به حقی در شواذ الایمان از ابن مسعود با سند صحیح نقل میکنه و اثر دوم اللهم زدنی ایمانا و فقه و یقین ایمانا عبد الله بن احمد الحمداہ کتاب در سنه اجری در شریعه ابن بسته در ابانه لالهکای در شرح اصولت قدل السنه و بیهقی در شرح ایوان با واسطه سند صحیح چیکار بکنید اینها مبتدعن ای حنفی متعصب اینا کافرن اینا که گفتن ایمان کم و زیاد میشه خب ببینیم معاذ الجبل بازم با سند صحیح میگه که اجتهبنا نعمن سا بیا بشینی ایمان بیاری ایمان بیاری یعنی ایمانمون ایمان زیاد بکنیم چرا ابن حجر چیز جالبی میگه چون این اثر به طور معلق ایمان بخاری در صحیحش نفت کرده اجلس بنا نومن ساعت نومن ساعت دلیل بر زیادت در ایمانه چرا؟ چون معاذ مجبل و دور برانش اصل ایمان رو داشتن اگر اینا اصل ایمان رو داشتن کی داشته؟ آیا معاذ مجبل میاد بیاد بیاد دوباره ایمان بیاری؟ خیلی اجلس بنا نومن ساعت یعنی بیاد بشینیم اراده بکنیم تا ایمانمون رو زیاد بکنیم این ترجیحه که ابن حجر میده و با واقعاً هم صوابه درست خب از جمله آثار این اثر هم بخاری به طور معلل گفتیم و به طور مسندش ابو عبیده کتاب ایمانش با تحقیق البانی میتونه برگ صفحه 72 ابن بشبیبه در مصنف و عبدالله بن احمد در کتاب سنت و ابو ابوبکر خلال در سنه و ابو نعیم و ابن بطه و لالکائی و بی حقی وغيره نقل كردن اين اثر را از معاذ بن جبل عبدالله بن رواحه دستهاي اصحابشو ميگيرفت طلبهشو ميگيرفت ميگفت ميگفت كه تعالوا لنمن ساعه تعالوا فلنذكر الله ونزدد ايمانا بطاعته ونزدد ايمانا بطاعته بيد ايمانمون با توع زياد لعل هو يذكرنا بماقصاته اين اثرن بازم با سند حسن با چهار تاریخ ابن عبی شیبه نقصده و همچنین ابن بکتر در ایبانه و ابن, ابن عبی الزمنین در اصول سنن و همچنین ابن عباساکه در تاریخ با چهار اثنات نقصده ابن عبی شیبه ایحاقی و ابن بکتر و ابن عبی الزمنین و ابن عساکر جندوب ابن عبدالله البجلی چنین میگوید مع رسول الله فتیانا حزاوره میگه ہمرا رسول الله جوانانی قدرتمند بودیم توانمند بودیم حزاوره یعنی توانمند جوان مرد قدرتمند و توانمند بودیم کنا مع رسول الله فتیانا حزاوره فتعلمنا الايمان ایمان یاد گرفتیم جندب بن عبد الله البجلی چنین میگه از رسول الله صلی الله علیه و ثم تعلمنا القرآن فزادتنا به ایماناته فالقران رو یاد گرفتی و ایمانمون زیادتر شد ایمانمون با قران زیاد شد و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا ایمان زیاد میشه با تلاوت قران با فهم در قران با فهم قران تدبر در قران عمر بن حبیب الخطمی رضی الله عنه چنین میگوید الایمان یزید و ينقص ایمان کم زیاد درسته که تون چنین بیاد چرا می زهابت بحث ایمان دارن میکنن نگاه کنید یه قسمتش عبدالله بن مسعود عمر بن خطاب عبدالله بن رواحه بحثش عمود بیاید بشینین ایمانمون زیاد بکنید درسته اونها بحث کم و زیاد ایمان ندارن بحث عامه ایمانمون زیاد بشه بیاین بریم ذکر بکنیم تلاوت قرآن بکنیم لیکن الان میبینیم امیر ابن حبیب میاد فرخورد میکنه چه موقع برخورد میکنه؟ فحصی که الان دیگه الان بذر نفاق و بذر اون تجه در امت کاشته میشه مرجعه میان مجوس میان، یهوز میان میخوان عقیده را تحریف بکنن ما مسلمان رو منحرف بکنن میان برخورد میکنه چه, چه میگه؟ میگه ال ایمان و یزید و یا نقص فقیله و ما زیادته و نقصه نقصه سال میشه زیادت و کمیش چیه؟ قال اذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة بي اگر خدا رو ذکر بکنی و یاد بکنی و تسبیح بگیم حمد تو تایش بگیم این زیادتشه غفلنا و ضيعنا و ونس نسينا فذلك نقصانش حالت فراموشی دوری از خدا در صورت گمراهی نقصان ایمانه این نقصان ایمانه بن حبیب الخطامی اینم اثر بازم امام نالتایی، امام عبدالله بن محمد حنبل و ابن سعد در طبقات و نسایی و خیلی از عیمه این اثر روایت میکنن. این اثر هم جز آثار حسن، حسنی هست که روایت شده. و امام نالتایی میگه می این قدیمترین اثری هست که در نقل در زیادت ایمان و نقصانش وارد شده. حالا هرچند که قدیمترین که از اونم داریم لیک منظورش قدیمترین اثری که در برخورد مرجئه گفته شده اولین جزء اولین کسانی که با مرجئه برخورد کردن از صحابه رسول الله علما صحابه رسول الله را بگیریم یا قل حنفی هایی که یک قرن بعد از رسول الله اومدن کسانی که برخلاف اصحاب رسول الله صحبت میکنن کسانی که برخلاف قرآن و سنت صحبت, صحبت, صحبت میکنن از رای و اجتهاد خودش صحبت میکنن اینا همه مفسده اینا همه کافر اینا همه مرتد شدن چه فرقی باشه با رافزین و با معتدل کردین فاسمان؟ چه فرقی بانوها داری من ها؟ اگر قرار باشه با صحابه این برخورد برقردو کنیم. اگر من بخوام آثار رو بگم، آثاری که اومده پیش از اینه. این سال برگرده مستفانه، این کتاب های اهل سنت ایبانه و اصول اعتقاد اهل سنت رو بخونه. غیر از این، چطور مثلا یحیاب نسعید القطان که یکی از طور می می میگه ما د أحد من أصابنا الصاب اللا على سنتنا في اليمان ونه اليمان ييد ان خصص اج ما نح می کنه میگه تمامی اونونه نامما میگه کسی از اون دمایی که ماذااشتیم نداشتیم مقد اینکه می گفت ایمان کموزات میشه این ثرم ام ابنانی در مسائل اما ما محمز نقم و هم ش ذهبي درس و الجملة آثاري كدري مع إجمعاتي كدري مع عبد الرزاق السنعاني صاحب الكتاب مسنى عبد الرزاق السنعاني يقل لقيته اثنتين أو اثنين وستين شخصا شيخا فذكر عددا منهم أشخاص الزكمي كونها تقول علماء كيفون هنا شخصي كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يقولون الاعتصاد قول وعمل نه قول و اعتقاد تنهای که کی میگه؟ امام تحاوی قول و عمل ما گفتیم قول قول زبان و قول قلب و عمل عمل قلب و عمل جوارح هر دو شامل میشه و قول و عمل یزید و یم قرس اجماع داره نقل میکنه ما قول کی میگه؟ تحاویی که چهار قرد بعد مجد یا امام عبدالرزق امام تنهای که در قرن دوم بوده شیخ بخاری شیخ احمد محمد، شیخ شیوخ، اجماع داره نقل میکنه. امام عبو عبد قاسم سلام، من بازم همچینیم. میاد، این اثری که عبدالرزاق، گفته امام عبدالرزاق سنعانی، امام لالاکایی در شرح وصول اعتقاد احل سنت نقل میکنه. جلد پنجم سفه نونسد و پنجوه هشت، شماره هزار و هفتت و سی و هفت. شرح وصول اعتقاد احل سنت، کتاب امام لالاکای وهناك امام أبو عبيد قاسب بن السلام كيف يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد و ينقص بعد اسم بيشة سدو سينفر امام ابن باتتادش ونحن يقول اسم سدو سيشة أهل العلم والصحابة وغيرها بعد الأمي هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد و ينقص وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا ابن باتدر ابواني جدد دقوم حج ساده جوارده شمرية هزارو ساده إفلا أذجم ل إجماعاتك أحمد المحنبل أجمع سبعون رجل من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأنصار على أن السنة التي توفي عليها رسولة السلام فذكر أمورا منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بسم إجماع امام ابو خاري امير المؤمنين در حديث يقول لقيتو اكثر من الف رجل من العلماء أثر امام ابن حجر در كتاب فتف الباريش مياد و همچنين لالاكعي در سرح وسول اعتقد اهل السنت امام ابو خاري چيني يقول لقيتو من الف رجل من العلماء بيشاز هزات علم باشن نشستن بالامصار در جهائي مختلف فما رأيتو احدا يختلف في أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص نجدنا كان اختلافه كذا ان ايمان كمو زياد بشه وايمان قول وعمل ايمان قوله كانه ليس واتخاذه كانه قوله واتخاذه وعمله انا كمان بقوم اجماعته ناخذه انا شيباني سهل بن متوكل شيباني امام ابو الجرير التب... ابن و ابن عبدالبر امام ابو الحسن اشعری خودش که گفتیم که عقید اشعال رو گفتیم بر اساس عقید قبلیش نقل شده همه اینها اجما نقل میکنن بر اینکه ایمان قوله و عمل ایمان و ایمان کم زیاد میشه همه اینها مفتده شدن این حنفی ها همه اینها مفتده. همه اینها کافره مرتد شدن از این این هزار نفری که امام امه بخاری السنن میکنه این تعصب است این تعصبی که سبب شده این کہ حنفی ها بیان احادیث بر رد امام شافعی هم بگن چی گفتن در رد امام شافعی احادیث را گزشن سیخرج علیکم رجل هو اضر علیکم من الشیطان یقال له ابن ادریس یعنی جملہ احادیث کلمیرا شفیعی میاد از شیطان بر شما ضرر بشتر اسمش ابن ادریس یعنی محمد بن شافعی تحسس مذهبی در رد پس دستر شافیه هم نماز درست دید تو فیلانه تحصول ما تحصول نداشته باشیم تحصول به حق داشته باشیم ببینیم اون اعتقادی که سلف داشتن صحابه داشتن چطور بوده قرآن را چطور فهمیدن خب این خلاصه بحث ود مختصری که ما میتونیم برای این خنفی ها بینیم در بحث اعتقاد اهل سنت میمونه مسائل دیگری که ما بایدش به پردادیم شبهات دیگری کلا دارند ما فقط یک مرور مختصری بر اونها خاییم کرد. شبهاتی که دارند چار پنش شبهاتشون گفتیم درسته و قده بر اونها هم دادیم. از جمعه شبهاتشون. اینه که ایمان مثل قول خوارجم گفتیم ایمان یک تیکه هست اگر یک کس قسمتش رفت همش میره ما گفتیم این قول خوارج از قول مرجم هست فقط این در این شبهه که دنباله بحث قبلیه چه فرقی بین اشعاره یا ببخشید بین مرجه و خوارج معتدل هست در بحث همین مبحث منطقی اگر یه چیزی یک کشف بره همش میره. خوارج معتدل انجام دادن واجبات و ترک محرمات را از ایمان میدونن انجام دادن طاعت. اعمال و عمر را عمر را جز ایمان میدونن مرجع عمر را از ایمان نمیدونن درسته از این لحاظ اگر کسی واجبی را ترک کرد در نزد خواال المساله کافر ولی در نزد مرجعه کافر نیست ایمانش کامل در نزد اونها خوارج ایمان با یک عمل بدی از بین میره تمامی در نزد مر... در نزد مرجعه با غیر از گفتار یا اعتقاد اون ایمان برداشته نمیشه از جمله شبهاتشون اینی که میگن زیادت و کمی در بخش مخلوقه مخلوق هم هسته کم و زیاد نمیشه درسته؟ مخلوق هم زیاد کم و زیاد میشه پس لازمه کم و زیاد شدن ایمان اینه که ایمان مخلوقه این جمعه شما ای از جمعه شما گفتن چی؟ اون چیزی که کم و زیاد میشه چیه؟ مخلوق یا خالد؟ مخلوق و لازمه ایمان که کم و زیاد میشه که شما علیه سننوی کم و زیاد میشه اینه که ایمان هم مخلوقه جواب جوابمون چیه؟ جوابمون اینه این حنبی ها خاطی نکنید ایمان یکی از طرف خدا داریم و یکی از طرف مخلوق یکی از طرف امر خداونده یکی از طرف کار ماست ما آنچه که بر به خدا ادتولیت علیه هم آیاتو این آیاتو دیگه همون زیاد نمیشه این صفات خالقه صفات خداوند اون چیزی که در ما تأثیر مدهد از قرآن خداوند اون چیز همون زیاد نمیشه اون چیزی که زیاد میشه ایمان ماست فعل ماست، اعتقاد ماست که کم و زیاد میشه. یه موقع به خدا نزدیک که از یه موقع از خدا, خدا دورتری پس ایمان فرق داره که از جهت خداوند باشه که خداوند بخواد اون ایمان رو کم و زیاد بکنه با خواسته خودش، مشیت خودش، قدرت خودش و صفات خودش و یک موقع از طرف بنده هست. باید نگاه بکنیم که منظور اون طرف چیه؟ پس از جهت خداوند صفات خداوند هیچ وقت بهش گفته نمیشه مخلوقه اون چیزی که مخلوق ماییم و افعال ما پس با این تفصیل مشخص میشه که امر خداوند ایمانی که از طرف خداوند یک مقفت داره و امری که از طرف مخلوقه یک مسئله دیگری هست عمل دیگری هست که در دست خوده مخلوقه بخاطر هم که امام حمال سنبل میگه کسی که بگه ایمان مخلوقی کافره من قال ال ایمان مخلوق فهو کافر و من قال قدیم فهو مبتده نبوده که پیانبر بگه ایمان مخلوق یا مخلوق نیست صحابه هم نگفتن اگر بگه ایمان مخلوقه کافری چرا چون ایمان وقتی که بگید ایمان یعنی ایمان به خداوند، یعنی ایمان به قرآن این اون چیزی که قرآن از از خاصه. یعنی خود به خود برمیگرده به چی؟ به قرآن و صفات خداوند. کی این قرآن صفت خداست و خداوند خالقه. به خاطر همینی که ما در دعا چی دارید؟ اعوذ کلمات الله التامات من شر ما پناه به کلمات تمامات. کلامت کلمات تمامات چیه؟ قرآن و قرآن صفت خداست، مخلوب نیست. حالا این اختلافی که هست بین ماتزله و اهل سنت الاشباهاتشون بعضی هاشون که اصلا اساسی که نداره که هیچ استدلال به حادیث موضوع مثل حدیث ابن عباس که نقمی کنه رضا الله که ایمان لا یزید و لا ينقص حدیث موضوعی هست از جل شبهات کلام به دلال کردن که مأمون و جویباری دو دو شخص دروغو هستند که در این اسناد واقعاً این اثر را جوزفانی در اباسیل و ابن الجوزی در موضوعات نقل میکنه یه روز تجاری نشسته بود در مناظره ای گفت که یه حدیث رو نقد کرد گفت که را ببینید اهل سنت دارن این حدیث رو روایت میکنن و حدیث دارن در فضل آلو بیت و این چرت و فرسکی رو میگفت. خب اون شخصی که باش مناظره میکنه گفت که ببخشید این حدیث را حل کجا روایت کردن؟ گفت که خودشون ار کتابای خودشون روایت کردن. خب چی کتابی روایت کردن؟ گفت کتاب موضوعات بلجوزی. گفت ببخشید این موضوعات بلجوزی چیه؟ این نمی موضوعات نمیدونی چیه؟ حدیث موضوع یعنی میگه موضوع چیده خوب یعنی موضوع موضوع بندی شده موضوع افترا نه موضوع فلان حدیث موضوع دیگه موضوع که خوشی داره گفت که این بدبخت برو این مقدمه موضوعات رو بخون الموضوع هو المختلق المكذوب المسنوع یعنی حدیث موضوع حدیث مختلقی خلق شده مسنوع شده ساخته شده حدیث دروغ بر رد او الله علیه این بدبخت نمیدونه موضوع چیه اهل سنت خودشون در کتاب خودشون این حدیث رو نقد کرده ولی که برای چی؟ برای اینکه اهل سنت بدونند که این حدیث نیست بلکه گفته یکیه گفته ی متعسبین و اونهایی که بر رسول الله دروغ بستن معمول و جویباری هر دو تا دروغو و زع تا جای که ابو میگه خبیثون و زع یعنی فقات مثل هشاب بن عمار و دروحین بالموضوعات اشعب نعمر امام امامه صقه حس و همچنین امام دصف این شخص میاد بر اونها دروغ میبنده مثل هو يستحق من الله ومن الرسول ومن المسلمين مسلمين اللعنه الله تعالی علی خد الله لعنه اشعب دروغ بر رسول دروغ بر ما این دروغ بلکه الله جل شأن انه لا ينتقن هوا الا وحي يوحه تحسس شو شو بتعملني بكلك وهيا ترى فرائي همينه ان امام ابن معين ياتي لعنه تشبيهونه ابن حبان كان دججالا من الدجاجله ظاهر احواله مذهب الكراميه وقال الذهب له طامات وفضائح ابن مامون مامون شخص دروغو دجالي از و Это д Mireille. PTSD版ali제� 그거 words? catastrophic. لو ت Azerbaijan Remember to tell him what the변 Allison malls with Bur microyesus Travis. ت希ция Erick Abdullah Sojay. Kinder илиЕ publicityNO remember that they were filming Mu Shah. Those people care but they don't know if they didn't. We don't know if they want to trust an iamani. So more people can trust that the Just a Soul. They want to say yeah, كيف تحسن المشاكل؟ كيف تحسن المشاكل بالرسول الله عنه؟ أمام أبو حاطم يقول دجال من الدجالين الدجال كذاب يضع, يضع على, على الذين يروى عنه ما لم يحدثوا به لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه جو إذن يكسر ذكره، وكان ذكره يقول مجال برئي الجرح كيف تحسن المشاكل؟ أحاديث جنان، أرسن ابن ماجه لا، ما أهل السرطة، تتعين أشخاص روايات هیچ وقت نمیان در کتابه اصولشون اعتقادهاشون از این دروغگویان روایت بکنن شناخته شدهن اهل سنت برهان دارن مدرک دارن برای اعتقادشون هیچ وقت این احقوال این دروغگویان رو قبول نمیکنن احادیث ما زیاده علی احادیث که زیاد امن نیست 4 تا بیشتر نیست از جمله احادیثشون حدیث محمد بن کرامه که میگه حدثنا احمد بن عبدالله قال حدثنا سفیان بن عن سالم عن ابیه ان النبي تنقل لا يزيد ولا محمد بن كرام شخص ساقطي دار علم الحديث واحمد بن عبد الله شيबानी جويوري همون قبلی که داشتی بازم در این اثبات دروغگو کذاب الخبیث ابن امام رازی میگه که نه يضع الاحاديث لابن الكرم لابن كرام علما يريد ابن كرم بهش میداد نه یه چیزی بهش میداد برای ابن كرام حديث مینه و ابن كرام ابن يضعها في كتبه عن امريكا رمضان نق میکنه حالا این احادیثی که هست ا بر روی من حدث به هذا استوجب الضرب الشدید والحبس الطويل کسکین كتبت رواه بخارینا حدث الرواه بخارینا از مستحق زدن و حبس کردن نمیشه این احادیثی که نقش شد سه شده احاديث دیگری هم که هست فرق وانه نداره همشون دروغگو دجال و مثل حدیثی که عنف میگه که روایت کنه که رسول الله فرمودن ها شاد رسولان یقول من قال الایمان یجد وینقص فقط خرج من امر الله و من قال انا مؤمن ان شاء الله فليس له فی الاسلام نصيب اینا واذ موضوع و آفتش و دردش در محمد بن كابن حبان مي كان يضع الحديث حاقم ومحاكم انه شعوري مكذاب خبي امام النقاش مي يضع غير حديث ومبنعي مي كذاب وضاع ابن الجوزي مي يضعه ابن ده موضوعات روايتهش مكانه خب ان خلاصه خلاصه البحث مرجئه شيء غير انسان مومنی به خودش اجازه میده که چنین حرفی بزنه یا بخوش اجازه بده این صحابه را همه دور بندازه بچسب این دروگان آیا دینه تدیونه ققله آدم دیگه حق و دین صحابه را ول بکنه بچسب این صفحال احلام این دروگان این اشخاصی که عمدن بر رسول الله دروغ بستن خب یک کمی دیگه بحث کنده در بحث مرجعه که ادامش خواهیم داد بیکنه قبل از اینکه ما بفرد بدیم موقفشون از نصوصی که طلالت بر زیاده و کمی ایمان داره سوالی که مطرح میشه اینها ایدهشون چیه در باره, در باره این آیات، این احادیت که کمون زیاد میشه نظرشون ایدهشون چیه نیاز به وقت داره که انشالله میذانیم برای ترساینده لیکن قبل از این کس ما بپردازیم به اون ای که دارن و عدلهی که بیان شده ما میپردازیم به از کسانی که اومدن الا به قول خودشون حد وسط را بگیرن گفتن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه گفتن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه حالا هر چند که اقوال دیگر هم نقشده و یک نارا این قولی که نقش شده و برای خودشون دلیل دارن دلیلشون اینایی که الان اومدن گفتن که ایمان زیاد میشه ولی که کم نمیشه دلیلشون حدیثی هست که از معاظلون جبر نق میشه که میگه انه که انهو اتفی میراثی یهودین وارثهو مسلمان میگه که این شخصی اووردن که شخص یهودی فوت شده بود که وارثش مسلمانه حتما پسرش مسلمان بود الان نمیدونم میگه که ماذمه جب تک این میگه سنی دم که رسول الله گفته الاسلام یذید ولا ينقص اینا یکی کلام دادن گفتن که ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه حالا این بعضی از اشعری گفتن روایت از ابو حنیفه هم هست و بیشتر این این قول غصانی ها گفتن و نجاری ها و بعضی از ابازی ها این فرقه ها میدونم قاطی میکنید کی هن و کی نیستن را خوشجوی جای خودسته. ولی یه بازی ها گروهات خوارج الان حکومت عمان اباضی است گروهات خوارج اینا میگن ایمان زیاد میشه ولی کم نمیشه تو در قرآن کمی نیامده حالا برای خودشان از قول خودشان دارن از جمله دلیل همین حدیث معاصی رسول الله میگه گفتن وحاشرتهن يقول الاسلام يزيد ولا ينقص این حدیث امام حاکم میگه صحیح و الاسنات ولم یو خرجا و بحقا ذهبی امام حاکم رو باید که در مصدر و بیحقی و جورقانی جو در عباطی این حدیث ابو داود نقید میکنه و احمد و تیالسی و حاکم که انا گفتیم امام البانی چنین میگه میگه این حدیث معلول به چند علیت ما در مستند در نازل ابوداوو چنين داريد حالا نگاه بكنيد فق اختلاف اسناد ها در این در اين اسناده در جو در جو رخاني در اباطيل و اومده از عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود أب الدؤلي ان معاذ تبان در ابو دعوشه عبد الوارث عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي سن عبد الله بن بريده ان اخوين اختصما الى يحيى بن يعمر يهودي و المسلم يمكن اسله تتصرف ورث المسلم منهما فقال حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ردت ابو الاسود مين شخصي بمن قلت انقطعت يعني انقطع این هست و اینجا این قطاع شده در سنن در سنن ابو داوید فس ابو الاسمن با معاد مقابله نداشته و این شخص هم معلوم نیست که کیه و امام به حقی هم به همین ایراد میگره اللہ که زعفش هم همین میدونه میگه این شخص مشخص نیست بعدی که بعد از این که اصنا روایت میکنه میگه که و هاده رجل مجهول فهو منقطع این شخصی که بلاتفد از اصناق میکنه از معادم جبل مجهوله پس در نتیجه این حدیث این روایت منقطع امام حافظ ابن حجرم در قطع الواری چیدین میگه بعد از این که تصحیح حاکم رازک میکنه میکنه میگه و تو عقق ببل انقطاع بین الاسود و معاد از اون انتقاط هایی که شده این تصحیح حاکم که حدیث معلوله بانقطاع بین اسود ادو علی و معاذ لیکن سماعش ممکنه یعنی yani احتمال در ابو الاسود از کی از معاذ شنیده باشه ولی جراحانی میگه که چی باطله به خاطر همین در چه کس میاره <تصفيق> از باطل پس ف... وقتی که اساس یک اتفاق حدیث ضعیفی باشه hadisi kechini nani tasawaid alish bash mushahhad ki tasan rawish kiye wa ibn al-jauzi ham dar mawzuat in hadis rowayat mikune ibn al-jauzi dar mawzuat rowayat mikune jild 2 safhe 223 wa iteham ro be و میگه که ابن حبان گفته کنه یضع الحدیث محمد ابن مهاجر الان این علت دبومی که در اصناد جورقانی و جوزی هست محمد ابن مهاجر که ابن حبان در بارش میگه یضع الحدیث این حدیث را دروغ بر رسول الله میبسته دروغم بر رسول الله نقل میکنه خب حالا دیگه چک نکنم نیاز باشه که ما بپردازیم به نه این مذهب رو بیشتر باز بکنیم حتی مذهبی که ك... الان گفتم حساس چینین باشه دیگه تکلیفش مشخصه لیکن حالا مرجه بحثش باز شد چون حنفی ها خیلی متمسک اند دفاع میکنن کتاب ها نوشتن دیگران باش و مخالفن تکفیر کردن به خاطر همین ما به طور گستردهش بحثش رو بردیم ولی این اقوال که بعضی از اشعاری گفته ای از صنع به من حنفی هست که متمسک بهش نشید یک گفته زعیفی هسته در کتاب ملل و یاد میشه ازش خاطر همین منفلش کردیم لی که لازم نیسته این اقوان هم بیان بشه خف کسی هست در این زمینه در این رسا اشکالی داشته باشه فکرم تا اینجا این مطالب کافی باشه مسئول اختلافی سیاده یک مقدار کمی مونده از بحث مرجعه انشااءالله موقع بشون همطور گفتیم درتبال روصی که درش زیاد این زیادی به کمی ایمان اومده بعد بحث استثناء میاد استثنا خیلی نیست من خیلی خلاصش کردم بعدا بحث تفااضل اهل ایمان میاد و اموری که ایمان رو تویت میکنن که مهمه برای ما یک چه چهار جلسه دیگری خواهیم داشت انشاءالله با بحث ایمان که در ایمان رو ببندیم و خلاصه اعتقادات طرف در بحث ایمان داشته باشیم باشید شبهات زیاده تفکری ها زیادن اینو تکفیر میکنن اونو تکفیر میکنن باید اساس و بنیه ایمان در تقاض اصول اعتقاد بوت محکم بشه کسانی میتونه جواب شبهات رو بده جواب مخالفین رو بده هستن افکار مخالف افکار افکاری فکری که هست در جامعه امپیریکوسندانشوها ما باید در این درس ها بیانش بکنیم رد و ردود بر اونها بدیم همونهایی که منفرطاً در از و مو... از ما مابین خودمون هم از و مخالفین خودمون مهمی که ما بدونیم خیلی مهمه و کتابی که توصیه میشه طلبه داشته باشند و با مطالعه بکنن کتاب زیادت الایمان و نقصان هیس و حکم الاستثناء فی زیاده الایمان و نقصان و حکم الاستثناء فی تالیف عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر شیخ امون عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر پروپوسوریست که سی تبالایی در علم, علم اتقاط و علم, علم ملل و نحل داره و همچین در شرح نبری از جمله دروسی که ما با داشتیم شرح عدب و بود یکی از علمای عدیب و معدب و علمای هست ربانی که معروف به توازایش و معروفه به سمتش و ملایمتش در حدیرگیسش حتما کتابش زیادت ایمان و نقصانه را بخونید اگر گیروه بردید هرچند کتاب خیلی زیاده 6-7-7-7-7 بحث فقط درباره باره ایمان و نقصانه شد کم و زیادت شدن ایمانه بیکن ارزش داره که انسان اقوال اهل سنت اقوال مخالفین با اهل سنت را هم به طور دقیق داشته باشه حتن که در این کتاب اسمی سروج و یا اله خمشه ای و اینها نیست چون اینها ما از اونها داریم مینالی ما از اونها داریم مینالی خب کسی سوالی رابطه داره این درس های اتقاط همینطور کم کم بین 40-45 دقیقه تا 50 دقیقه کم کم بهتره چون جمبندیش و خوندنش مشکل دشواره باقتنی که وقت داشته باشید بخونید و محکمش بکنید و ما خیلی زیاد طولانیش نمی‌کنیم. فقط این آخرین کلاسونه، درسمونه. سعی می‌کنم سبقت‌تر بشه که سنگین نباشه برد. خب سوالی نیست؟ سبحانك الله والحمد لله سبحان الله رب